عزیزان من از خود راضی نشیم چار تا کتاب خوندیم خیال میکنیم حق همونه چار تا جلسه رفتیم خیال میکنیم حقیقت فقط همونیه که تو ذهن ما پر کردن یه لاکی دور ما کشیدن ما رو تو لاک نگه داشتن بعد همه رو میکوبیم کنار میزنیم فقط ما حق فهمیدیم بقیه باطلن جواب داره فردای قیامت اینا والله باید جواب بدیم در مقابل خدا ببینید اینا کیا بودن من از کتاب اصرار و صلات ایشون صفحه 105 خیلی جالبه این نکته رو گذاشتم گذاشتما برمیگردم اون رو بگم بعد برگردم اینجا دقت کنید چی عرض کنم. اسرار و صلات مرحوم جواد های ملکی تبریزی صفحه 105 می‌فرماید ما وقتی وارد درس ملا حسین همدانی شدیم حالا ملا حسین قلی همدانی کیه بعد از شیخ انصاری اولین مقام علمی حوزه نجف به اعتراف همه علما لذا اول همین که شیخ انصاری از دنیا رفت ملا حسین قلی رفت سر جاش نشست همه علما قبول کردن او درس فقه رو شروع کرد و اصول رو ولی بعد مرحوم ششتری که اومد سراغش تو وظیفت بالاتر از اینه کما اینکه که راجع و مرحوم علامه تبا تبایی الله تعالی علیه این مرد خدایی که قدرشو نمیدونن ایشون وقتی میخواست فقه درس بده بقیه به گردش نمیرسیدن بیشون گفتن چرا فقه درس نمیگی؟ فرمود من به کفایی وجود داره من به کفایی وجود داره این بود خالی مونده به تعبیر دیگر اونا واجب کفایی هستند اما اینا واجب اینی هن. حالا وقتی که ملا حسین قلیه همدانی که یه همچه قدرتی داره ایشون کلاس درسیش میگه بدهی بودیم من جمله یک سید خیلی بزرگوار حمدانی شاگرد درس ملاحسنگولی همدانی 140 سال قبل از حمدان نامه نوشتن که برادر این آقا سید روحانی شاگرد ملاحسنگولی در حمدان تجارت داره ولی یک کارایی میکنه بعضی تجار بازار دلخور میشن طبقه ندارن مرحوم الله حسینگولی به این برادرش آقا سیدی که شاگردشه داشته هم درس آقای جواده های ملکی تبریزی فرمودن یه نامه بنویس برای برادر تو همدان موعزش کن که چرا این کارا رو میکنه؟ مرحومه این سید نام، حالا جواد های ملکی توی صفحه 105 اصلاح و صلات اینو نقل میکنه. میگه هم کلاسی ما، سید همدانی، نامه رو نوشت قبل از این که بفرست همدان آورد برای ملاح نامه روی که داد به استاد استاد که نگاه کرد انایت بکنید فرمود که این نوشته شبیه نوشته اهل قفلت است دقت کنید چی از میکنم ملا حسین به این سید همدانی از شاگردای خاص او فرمود این نامه شبیه نامه نوشته اهل غفلت هست یه دفعه ما تکون خوردیم چرا استاد چی شده؟ گم نگاه کنید شما نوشتید که این اعمال موعظه میکنه برادرشو زمنان این اعمال اعتبار تو را در نزد مردم از بین می برد و هم در آخرت موجب زیان و ضرر خواهد بود کجاش نوشته اهل غفلت بود؟ کی فهمید؟ حسا گفت دنیا رو مقدم داشتی بر آخرت اعتبار نزد مردم رو بر ضرر آخرت مقدم داشتی یک عارف دنیا را مقدمه بر آخرت می دارد شماها هم اینجوری ببینید کجا رو خونن فکر تا کجا میره اینا دارن این حرفا می زنن نه اینکه حرف بود عزیزان من اینا عمل می‌کردن و لذا هرچی چی بینا فوش دادن تکون نخوردن نفوش بدید هرچی دلتون میخواد پشت سر ما بگید وصله بچسبونید گاهی اینا رو نجس میدوندن استکانشون آب میکشیدن اینا میخندیدن من بدبختا چی میفهمید شما برید راه خودتون رو اما یه روزی شاید بیدار بشید امیدوارم قبل از مرگ باشه ولی اگه بعد از مرگ باشه وای به حالتون کال از نهج البلاغه میخونم براتون این آدم که وقتی به شاگردش میگه نوشته ی تو نوشته اهل غفلت هست. چرا؟ چون اعتبار دنیا را بر سود و زیان آخرت ترجیح دادی. اما یه متفکر عارف واقعی اسلامی دنیا را بر آخرت ترجیح میده. دنیا حرامون علی اهل الآخره. و آخره حرامون اهل دنیا دنیا و آخره حرامان علی اهل الله دنیا و اهل الله را به یک بار از دل تنگ برون کردیم تا جای تو باشه دعام را به یک بار از دنگ